این داستانک طول عمر وقتی کار ساختن دنیا تمام شد قرار شد طول عمر موجودات روی کره زمین رو هم معلوم کنند اول الاق اومد و پرسجو کرد که چه مدت باید روی کره زمین زندگی کنه به او گفته شد سی سال بعد از او سوال کردند آیا کافیه؟ الاق جواب داد خیلی زیاده سی سال آزگار باید بارهای سنگینو از جایی به جای دیگه ببرم. مثلا کیسه گندمو به آسیاب ببرم. حاصل این زحمت نون برای بقیه و شلاغ و لگت برای منه. یک عمر حمالی بیهوده خواهش میکنم چند سالشو کم کنی. به اولاق رحم کردند و عمرشو به هجده سال تقلیل دادند. اونم خوشحال شد و رفت بعد سگ از راه رسید ازش پرسیدند میخوای چند سال زنده بمونی برای الاق سی سال زیاد بود حتما برای تو خوبه سگ در جواب گفت چه فکر اشتباهی میدونین چقدر باید سگ دو بزنم از حال میرم وقتی هم که پیر بشم صدام و از دست بدم دیگه نمیتونم پارس کنم و دندونام قادر به گاز گرفتن نباشن چی از من باقی میمونه؟ به جای پارس کردن باید زوزه بکشم و مثل مار از گوشه به گوشه دیگه بخزم. عجز و التماس سگ موثر بود و عمرشو به دوازده سال کاهش دادن. سگ رفت و میمون وارد شد. به میمون گفتند تو از اینکه سی سال زندگی کنی خوشحال میشی؟ تو که مثل اولاق خرهمالی نمی کنی و مثل سگ مجبور نیستی یه عمر بود حتما حتماً سال برای تو عمر مناسبیه میمون گفت اصلا اینطور نیست من باید مدتی طولانی برای خندوندن مردم عدا و اطفار در بیارم تازه سیبایی که به من میدن ترشه باید بگم که این همه فرا تو ظاهره در باتن اندوه نهفته است. من اصلا تحمل سی سال زندگی رو ندارم. بهش ده سال زندگی عطا کردند. بالاخره انسان سر حال و قبراغ ظاهر شد و خواست طول عمرش رو بدونه. بهش گفتند به تو سی سال زندگی عطا میکنیم. آیا کافیه؟ انسان با صدای بلند اعتراض کرد درست موقعی که تازه خونم و ساختم اجاغم و روشن کردم و منتظرم میوه های درختایی رو که کاشتم بچینم وقتی تازه دارم نفس راحتی میکشم باید بمیرم نه خواهش میکنم عمرم و طولانی کنید باشه هیچ ده سال عمر علاقم به تو میرسه انسان گفت نه کافی نیست خیلی خوب پس دوازده سال از عمر سگ بهت اضافه میشه انسان گفت نه هنوزم کمه خیلی خوب ده سال باقی مونده از عمر میمون هم به تو داده میشه به شرط اینکه دیگه بیشتر از این توقع نداشته باشی انسان با اینکه هنوز راضی نشده بود اونجا رو ترک کرد بدین ترتیب انسان به عمر هفتاد ساله دست پیدا کرد انسان سی سال اول زندگی و که دوران رشد و جوونیه با سلامت و شادابی کار و زندگی میکنه. هجده سالی و که از عمر اولاغ بهش بخشیده شده کار میکنه و به زحمت زیاد و پاداش اندک تن میده. دوازده سالی و که از زندگی سگ بهش داده شد در گوشه میشینه و نق میزنه. چون دیگه دندونی براش باقی نمونده. وقتی این دوره ها تمام شد، نوبت ده سال میمون میرسه. انسان در این دوره دوباره به حالت کودکی برمیگرده و کارهای بچگونه انجام میده. کارهایی که حتی به نظر بچه ها هم بچگونه است. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها